رخداد نادرستی نظری های نژادی هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی به نام خدا آ درود قسمت بیستم برنامه... برابری رو در از شما هستیم در اواخر قسمت 19 جناب آقای ایران مهر گرامی به مسئله ایشاری کردن در مورد بحث خلقت که اساساً ما انسان ها تا به حال رو فرستادیم که فقط تا 50 سال نوری از شعای ما تا به رفته و بخوایم اگر حتی برفرض بر مرکز عالم هم باشیم تا شعا حدود 8 میلیارد سال نوری بایی قسمت عالم هستی یا هي قسمتی از کیهان فاصله داریم یعنی ما خیلی راه یک یک چند میلیاردم مثلا هزار بسیار کم قاله شدیم لذا ما نمیتونیم فعلا با قطعیت بگیم که آیا مثلا در این عالم هستی تنها هستیم یا تنها نیستیم و فلان اینا جناب آقای این اون بحثی که در شروع کردیم در اواخر برنامه بره. 19 هم اون رو ادامه بدین تا وارد مبحث دی بشیم و طرح بحث کنیم و در خدمت عزیز باشیم خواهش من. با درود بر شنوندگان گرامی ادامه میدیم اون بحثو آی دکتر همونجور که چنددرنشستها پیش هم اشاره کردیم ما به دو دسته کلی علومو تقسیم کنیم میشه علوم نقلی و علوم عقلی یعنی فعلا ما با این شاه پنجاه سال نوری نمیتونیم درباره جهانی به شاه هشت میلیارد سال نوری نظر بدیم یعنی هشت میلیارد سال باید وایستیم تا این خبرای ما بره 8 میلیارد سالم وایستیم تا اونا یک یه پیغامی دریافت کنن مشابه ما باشه بفرستن مثلا حدود 15 میلیارد تا 16 میلیارد سال دیگه ما بفرین و اونجا مثلا اون تک کسی هست یعنی بنابراین اصولا غیر دانشمندا آدمای عادی انتظار دارن تمام اینا رو با همون محدودیت‌های فیزیک مغز ما شروع کنن توضیح دادن البته وسط کلام شما عذرخواهی می‌کنم معمولا برخی از این آژانس‌های فضایی معروف هستش که سالی حدود نزدیک 10 میلیارد موج صوتی امواج رادیویی دریافت میکنن از بلد بلد. نقاط مختلف کیهان ولی اینا رو حقربال میکنن قرب اخر به چیزی هم نمیرسن رسن صداهای, صداهای کیهانی صداهای کیهانی که در واقع تا اینجوری اینجوری که یک صدایی یا موجی باشه که توسط یک موجود و یا یک موجود زنده‌ای که دارای زیشعور باشه بلد بلد. و هدف داشته باشه از تولید امواج اینجاست که علوم عقلی پاش میاد وسط حالا ما باید خرد و عقل و بذاریم وسط ببینیم که تو این جهان به این گستره ای ملیارد ها میلیارد میلیارد کهکشان و ستاره مثل ما این همه ماده عالی و غیر عالی کربون تو همه این جهان هست خب عقل میگه که میتونه کاملا طبیعی دیگه یه جای دیگه یه خورشید دیگه یک تشکیلات دیگه حیاتی مثل ما پدید بیاره حتی دانشمندا معتقدن که میتونه حیات به وجود بیاد به جای کربن پایش سیلیسیم باشه بله این امکانش هست خب این اساس باست... دیگه چیز باست... دیگه درست باست... میکنه دیگه این پس ما اگه بخوایم با همین های ذهنی خودمون در این بار این چیزا نظر بدیم خب به جایی نمیرسیم این بحث تکامل هم همینطوره یعنی وقتی که ما میگیم آقا این انواع ت... تغییرات م... تغییر میکنن و مثلا نوک خمیده اگه مزیت اون میمونه و مردم میگن نه مثلا نه خب نک رو تو همین مثلا مدتی که قناری تو خونش داشته حساب میکنه. میگه نوک قناری من که خم نشد بله صحبت چهل میلیون ساله <لبب> یعنی چهل هزار تا هزار سال بله. خب این بعد یک توضیح علمی داره بعد تنها ای که اینو حل میکنه زمانه زمان. زم... همه زمان رو حس میکنه از معادله میگه نمیشه چرا میشه تو زمان مثلا یه میلیارد سال صد میلیون سال پنجاه میلیون سال ده میلیون سال راحت تغییرات سنگبارا داره نشون میده دیگه اسب 16 میلیارد سال پیش 5 تا انگشت داشته الان سوم داره باید. هست سنگبارش هست واقعا هم اسبه اما تغییر کردن دیگه خب من خواستم بگم اگه ما اینا رو داریم میگیم به اینجا رسیدیم که اونا تغییر رو متوجه شده بودن در نوزدهم اما نمیدونست از کجاست؟ جنا رو اون موقع نشناخت. اما میدونن یه تغییر رخ میده بعد گفته بودن آقا این انتخاب طبیعیه که محیط سازگار و نا... اون تغییر ممکنه با این محیط سازگار باشه با اون محیط دیگه ناسازگار باشه موجوداتی که تغییر میکنن اگه تغییراتشون ناسازگار باشه تو اون محیط نمیتونه ژناشونو به نسل بعد منتقل کنه حالا جالبه که اونا هم اون موقع حتی اون موقع از سوی گروهای تونرو به کفرگویی متهم میشدن بله یعنی مثل خیام ما مثلا ما حالا من بعد به مسئله نصفی اگه تو این نشست رسیدیم توضیح میدم که او بند خودم همین مشکل رو داشته دقیقا نصفی 650 سال پیش از داروین بوده اینا یه قاعده دیگر حالا اینو که میگم همش مختصه های چارز داروین نیست این یک روندی طی شد تو این دانش یکی یکی اینا مثل یه درختی هی شاخو بال بهش افسوده شد بعد اینایی که این نظریه رو داشتن دنبال میکردن یک, یک باور تازه ای رو مطرح کردن گفتن برای مثال اگه مقاومت محیطی وجود نداشته باشه هر نوجانداری به قاعده تصاعد هندسی افزایش میابه یعنی توی نسل افزا، افزا، افرادش دو برابر میشن نسل بعد چهار برابر نسل بعد هشت برابر و همینطور بله اتفاقا در این مورد حالا میانی کلام تونیم نگه دارید که در واقع این همین انشتیند با نام در واقع پلان باینری مطرح میکنه که میگه اجازه عجایب هشتگانه است یه مثال میزنه میگه که وسط یه استخری شما یه شیشه یه مانهی بزارید که از این وقت به این وقت هیچی نره یه نصف یه نیمه استخ یه دو باکتری بذارید و اگه هر باکتری تو هر یک دو برابر بشه آ ده روز تیم طول میکشه که این در واقع استخ همون نصف پر باکتری بشه بعد با شاگردش میگه که اگه این مانه این شیشه رو از این وسط استخ بردنیم چقدر طول میکشه نصف دیگه هم پر, پر باکتری بشه یکی میگه چهار روز میگه همون ده روز یکی میگه یک تا میگه نه همون یک سانی است چون که این پلان نشون میده که هر یکسانیه دو برابر میشه در آن, واحد... آن واحد برای دو, دو, بر... برابر. دو, برابر. دو برابر میشه لذا همین تساوی هندسی اگر حاکم بر کل در واقع هستی بود کل در واقع تکثیر در میان موجودات زنده حالا از موجودات زربین پلانکتون ها و ویروس ها و باکتری ها بگیر تو همه جا گفتیمش که حتی اگر جلوی رشد باکتری ها گرفته نشه یعنی مثلا خود طبیعت اون مکانیزم هایی که داره جلوی رشد این باکتری ها رو نگیره در عرض یک ماه کل پحنه خاکی و آبی کره زمین به ارتفاع صد متر فقط باکتری میشه یعنی انقدر در واقع جلوی رشد میتوزی و میوزی این نوع باکتری ها و این نوع موجودات زرمینی گرفته میشه ببخشید میاد که هفتتون اینو خواستم گفتم که این تساود هندسی دقیقاً اتفاقا درست فهمیده بودن ولی بره. چرا حالا این انواع میمونن چه قانونی حاکم هست که این نوع از بین میره مثلا این تکسیر میشه تکسیرش تا یه مدت تصاعدی میشه تا یه مدت تصاعدی نمیشه و مثلا متوقف میشه دقیقا بره. خدا خیرتون بده هم توضیح دادین این مبحث و کامل این روشن شد خاش. هم یه پیچکفتاری گفتیم بری دنباله این چیزی که اینا در واقع اون موقع کار کردن و بهش رسیدن الان دقیقا در آغاز اون مطلع بحثیم که شما خوشبختانه مقدمش رو فرمودید اینا گفتن خب چی جلوی این تصاود هندسی رو میگیره؟ نامشو گذاشتن مقاومت طبیعی یعنی اون حوادث و همه چیزایی که رخ میده مثلا سیل میادی بخشی از موجودات رو میبره بله. جانوران شکارچی بچه های اینا شکار میکنن تخماشون مثلا به سمر نمیشین و اینا همه رو گفتن هم شروع داشتن طبیعی بعد اینا مشاهده کردن که تو طبیعت همچین اتفاق نمیافته. یعنی حکم، عقل، یعنی محاسبات نشون میده که باید به قاعده تصاوت هندسی روشت کنن اما وقتی مشاهده کردن دیدن در طبیعت اندازه جمعیت هر گونه از جانداران در خلال مدت طولانی تقریبا ثابت میمونه. یعنی اگه ما حساب میکردیم یک گوزنا الان باد مثلا هشت برابر میشدن نشدن تقریبا همون ها با همون تعداد دارن میرن و میان. پس یه اتفاقی افتاده. اینا متوجه شدن و توضیح دادن. داریم مثلا از قرن 90 وارد قرن بیستم میشیم دیگه. توی درس کار میکردن گفتن پیداست که همه گامت ها به زیگوت تبدیل نمیشون یعنی همه و اون تخمک ها اینا همهشون لقاح پیدا نمی‌کنن. این این این بعد در دنبالش گفتن اتفاقا همه این زیگوتا همه این تخمه های اولیه هم جاندار بالغ نمیشن بعضی هاشون سقد میشن بعضیا مادرها مادره اصلا اون تو شکمشه میمیره تخمه میشکنه سوسمار تخم اون پرنده رو میخوره این تبدیل به جاندار نمیشه بعد مرحله بعد گفتن بعضی از این هم که تبدیل به جاندار بالغ میشن نمیمونن خورده میشن آهوه خورده میشه گرگ او وسط میمیره نمیدونم شیر بچه‌هاش خورده میشن اینا همشون به مرحله سن تولید مثل نمیرسن. نمیرسن. این رو گفتن تنازع بقا بل. یعنی یوسپلنگ مثلا چهار تا توله میاره وقتی بزرگ میشه میبینی خودشو یه دونه توله که بعد از هم جدا میشن یعنی سه تاش توی وسط مردن در دنبال این مباحث اینا همچون که اولش هم عنوان کردیم دیده بودن گناه با هم فرق دارن اینا گفتن درسته یه گونه شباهتای زیادی دارن اما همه افراد یک نوع جاندار 100 درصد نظیر یکدیگر نیستن. یه تفاوت های جزی دارن. شما رو تو خیابون را بریم ببینین چندتا تا دماق شبیه هم می‌بینین. تقریبا هیچ هر کسی بینی از دو تا سوراخ و دو تا پره تشکیل شده با تیغه. اما ببینید چقدر شکلش متفاوته. یه مثال ساده است. حالا ما از انسان که یک موجود پیشرفته است بگذاریم بریم تو همون موجودات ساده مثلا قرباقه و مثلا فرنگی و اینا میگه افرادی که داره چون اونجا توضیح ساده تره. افرادی که دارای تفاوتهای مساعد مزیتی در رقابت با دیگران خواهند داشت بازم عرض میکنیم زمانه که اینجا توضیح میده تو یه که... نسل و نسل پنج نسل و شش نسل گوز چیز مشخص نمیشه نه اون رشنالیسم دو تا چهار تا بلده. که, که واقعا میگم همین رشنالیسمی که حضرت کانت این رو در واقع به بشر و به مدرنیته تقدیم کرده خیلی مصیبت تا به حال به وجود آورده <تصفيق> که در واقع همه ببین حالت رشنالیسم رو دارن و این مدرنیتی که حاصلش همون تهوه‌ی ژامپل ساتر بود واقعا دقیقاً از همین بن می‌خیزه همین تنازع بقا رو حالا اینجا ما یه اذیت بکنیم دوستان چپ چون ببینیم مثلا همین مارس و اندیشه مارکس می بینید دقیقاً از همون داروین گرفته شده یه سری نیروهایی در تاریخ هستند. بر اثر تنازع بقا بر اساس مقاومت درونی اینها پیروز میشن بر اساس تز یه سنتز از اینا به وجود میاد و ما هدفمون چیه چیکار کنیم برمیگردیم به اون کومون اولیه و چقدر هم انسان وقتی برمیگرده میبینه که تو قرن 20 نزدیک 2 میلیارد از جمعیت بشر تحت تاثیر چنین ایدئولوژی قرار گرفتن آدم واقعاً تاسف میخوره واقعاً تاسف میخوره که چقدر بشر میتونه واقعا بله. به این, جور مسئله وارد این همون برداشتهای شخصی های دکتر دیگه ببینید اینا اومدن این مسئله زیستی که مطرح شده بود رو برداشتن تبدیل کردن به ایدولوژی و تفکر رو بعد به انسان ها نسبت دادن بعد به جنگ ها نسبت دادن تاریخ انسان رو خواستن با تاریخ مثلا مرقابی یکی کنن این میشه که به این یعنی وقتی که میدونین من اصولا معتقدم که دکتر که شاید تفکر خوب باشه، شاید عبادت خوب باشه، شاید ایمان خوب باشه که اینا هر کدوم در جای خودش خوبند اما من به شخصه تو زندگی معتقدم که تعبد،, تعبد خوب نیست من تعبد از نظر اسلامی نمیگم تعبد خوب نیست یعنی وقتی میری مارکسیست میشی دیگه بعد دیگه میری تو مایی اونو رو بعد همه چیزم میخوای بیاری به امیال خود تفسیر کنی یا داروین را میاری وسط تو همه هم میاری توضیح میدی و بعد میشه دیگه این میشه دیگه. در این حال از همین خط بحث رو دنبال کنیم اینا این به این صورت تناظر بقا رو تعریف کردن گفتن همه افراد یه نژاد نظر شباهتوی دارون زیادی دارن کاملا هم شبیه هم نیستن هنوزم اون مسئله جهش رو و اون توالی جنی رو خب هنوز کشف نشده بود دیگه. این میانه های قرن بیستون بود که کشف شد. بعد گفته بودن که افرادی که داری تواده های مسا... مساعدترن مزیت دارن در رقابت با دیگران. خب این بازم میگم توی یه نسل درن از پنجا نسل مثلا گنجش که مشخص نمیشه که مثلا تو آفریقا خوش میاد. بله. تو آفریقا خوش میاد. اگر بخش بیستون داره تمام میشه این نگه داریم برای ببینید مسئله ای که مطرح کردید بله یکم زمان میبره ببینید که قسمت بیستمین برنامه رو به پایان هستش اتاق فرمانم اشاره میکنن شنوندگان گرامی رو تا آغاز قسمت 21 کم برنامه برابری به خداوند متعال سپرد. خدا